استفاده از قدرت بازتابش در کسب و کار اغلب می بینم که مردم به اشتباه گمان می کنند که بهرهوریشان زیاد است چرا که پرمشغله اند؟ بهرهور بودن و پرمشغله بودن لزوماً یکی نیستند. انجام دادن کارهای متعدد و مختلف منجر به موفقیت شما نخواهد شد بلکه انجام دادن کارهای درست است که موفقیت را برایتان به ارمغان می آورد. و اگر در حال انجام دادن کارهای اشتباه باشید بیشتر تکرار کردن آنها نه تنها شما را به موفقیت نمی‌رساند بلکه فقط موجب می‌شود که سریعتر شکست بخورید هیچ کسی برای شکست خوردن برنامه ریزی نمی‌کند همه ما معتقدیم که در مسیر درستی گام برمی‌داریم یا اینکه حداقل در مسیر هستیم که از نظر منطقی درست است مردم از رختخوااب بیرون بیرون میآیند به محل کارشان میروند با تلاش زیاد کار می کنند به خانواده هایشان عشق می ورزند بر چهرههایشان لبخند دارند هر کاری را که لازم میدانند انجام میدهند و گمان میکنند که یک روز پربار را سپری کردند یا اینکه حداقل به گونه ای برنامه ریزی کردند که یک روز پربار داشته باشند. متاسفانه در بسیاری از موارد چیزی که واقعا رخ می‌دهد این است که آنها روزشان را همچون اردکی سفری کردند که برخلاف جریان قدرتمند آب به سمت بالادست رودخانه شنا می‌کند و پاهای پردهدار کوچکش با تمام قدرت تکان می‌خورند اما او را به هیچ جا نمی‌رسانند. همه مردم مشغله دارند و کارهایی را انجام می دهند اما آیا آنها کارهای درستی هستند؟ آیا آن کارها مفید و سازنده اند؟ آیا قدمی رو به جلو برداشته اند؟ اینها سوالهاییند که بسیاری از مردم وقتی را به تفکر درباره آنها اختصاص نمی دهند. آیا تقضیهی مناسب و کاملی دارید یا غذایتان نامناسب و ناکافی است؟ امروز با چه کسانی معاشرت کردید؟ آیا معاشرت با آنها شما را موفقتر می کند؟ چگونه؟ از چه طریقی؟ آیا امروز به اطلاعات خوب و سودمند گوش داده اید یا فقط به موسیقی گوش سپرده اید؟ آیا مکالمات مثبت داشته اید یا درگیر شایعات خبرچینی ها و شکوه و گلایه ها بوده اید؟ امروز چه چیزی را مطالعه کرده اید که در موفقیتتان تأثیر گذار خواهد بود؟ آیا کارهایی را انجام داده اید که افراد ناموفق تمایلی به انجام دادنشان ندارند ؟ امروز رؤیای چه کسی را ساخته اید؟ خودتان را؟ یا رؤیای شخص دیگری را در برنامه های دوازده مرحلهی به این موضوع جستجو و ایجاد فهرست شخصی کامل و شجاعانه گفته می شود. من نیز شما را تشویق می کنم که جستجوی ساده انجام دهید و با خودتان رو راست باشید پیشرفتها یا پسرفتهایتان را درست در مقابل چشمتان بیاورید. این یک تمرین قدرتمند است به جای اینکه بنویسید قصد انجام دادن چه کارهایی را دارید، در انتهای روز یادداشت کنید که در آن روز چه کارهایی را انجام داده اید. امروز چه کارهایی را انجام داده اید که شما را موفقتر کردند؟ آیا ده صفحه از یک کتاب خوب را مطالعه کرده اید؟ آیا غذاهای سالم خورده اید و تمرینات ورزشی مناسبی انجام داده اید؟ آیا معاشرت‌ها و ارتباطات مثبت داشته اید؟ آیا کارهایی را که برای موفقیت در کسب و کارتان لازم است انجام داده اید؟ آیا به کسی گفته اید که قدردان خوبی هایش هستید؟ در انتهای هر هفته به نوشته هایتان نگاهی بیاندازید و از آنها فهرستی تهیه کنید. این کار نه تنها چیزهای بسیار زیادی درباره حقیقت زندگی روزمره تان به شما خواهد گفت، بلکه احتمالش زیاد است که همین عمل ثبت کردن بازتابش روزانه پیش از این شروع به تغییر دادن شما کرده باشد. اولین باری که این تمرین را انجام دادم چنین شد بعد از گذشت چند روز اول پی بردم که تا ساعت ده صبح روند کاری عادیم در آن روز را تغییر می دهم و درگیر اقدامات مثبت بیشتری می شوم چرا که اصلا دوست نداشتم شب دوباره با آن مرد داخل آینه با دست خالی روبرو شوم. راه‌های بسیار زیادی برای انجام دادن تمرین بازتابش وجود دارد و من لزوما یک راه خاص را توصیه نمی‌کنم. زیرا افراد با هم متفاوتند و چیزی که برای من بسیار مؤثر واقع می‌شود ممکن است برای شما تأثیری نداشته باشد. برخی از مردم این کار را با یادداشت وقایع روزانه انجام می‌دهند. اگر شما نیز این روی کرد را انتخاب کنید، می‌توانید کاری کنید که این شیوه برایتان مؤثر واقع شود. فقط اطلاعات مربوط به اتفاقهایی را که آن روز رخ دادند و افکار و احساساتتان را درباره آنها ثبت نکنید. سوالات برتری خفیف مشخص و خاصی را از خودتان بپرسید. در هر یک از جنبه‌های زندگیم چه کارهای ساده و مهمی هستند که انجام دادنشان آسان و انجام ندادنشان نیز آسان است. آیا آن کارها را انجام داده ام؟ آیا به سمت جلو قدم برداشته ام؟ آیا روی منحنی موفقیت قرار گرفته ام؟ بعضی از افراد ثبت وقایع روزانه را دوست دارند، اما برایشان سخت است که هر روز این کار را انجام دهند. در عوض، فهرست مشخص و مکتوبی از اقدامات برتری خفیف ایجاد می‌کنند و هر روز آن فهرست را بررسی می‌کنند. در روزهایی که زمان کافی ندارند، تا یک ورودی را در دفترشان ثبت کنند، فهرستشان را مرور می‌کنند و این سؤال‌ها را از خودشان می‌پرسند. در هر جنبه از زندگیم آیا کارهای را انجام داده ام که هم انجام دادنشان آسان است و هم انجام ندادنشان؟ آیا تکانشم را روی منحنی موفقیت ادامه داده ام؟ برخی از مردم دوست دارند که به جای نوشتن صحبت کنند و ترجیح می دهند که اقدامات روزمرشان را در مکالمات پیگیری کنند. می توانید یک همراه برای بکارگیری اصول برتری خفیف پیدا کنید. یک دوست که نیز می خواهد قدرت بازتابش را به کار گیرد و زمان اندکی را اختصاص دهید تا از یکدیگر پرسش و کسب اطلاعات کنید. امروز چطور گذشت؟ آیا در هر یک از جنبه های زندگیم کارهای لازم را انجام دادم؟ انجام دادن هر روزه این کار کاملا ایدئال است اما اگر به هفتهی دو مکالمه یا حتی یک مکالمه تبدیل شود هنوز هم برایتان بسیار موثر خواهد بود. کلید این کار صبات و پایداری است، درست مانند لاک پشت آنکه پیوسته می رود در مسابقه برنده می شود. امروزه افراد بسیار زیادی تلاش می کنند تا با همکاری با یک مربی شخصی از طریق بازتابش به سطوح بالاتری از بهرهوری دست پیدا کنند. مردمان نسل قبل گمان میکردند که مربیگری فقط در مسابقات ورزشی و برای ورزشکاران حرفه لازم است. سپس دریافتند که اگر اهداف بدنسازی شخصیشان را نیز با استفاده از مربیان و تمریندهنده های شخصی دنبال کنند احتمال موفقیتشان بیشتر خواهد بود خیلی زود مدیران اجرایی سطوح بالا از جلسات مشاوری شخصی با مشاوران بهره‌وری استفاده کردند تا در بازی های سازمانی و مالی با ریسکهای بالا از آنها مشاوره بگیرند و سپس این صد شکسته شد مردم ناگهان پی بردند که می توانند برای هر چیزی یک مربی استخدام کنند و رشته مربیگری شخصی به یکی از جذابترین حرفه های جدید تبدیل شد. خب، مربی چه کاری انجام می دهد؟ مربی بیش از هر کاری یک آینه در دست می گیرد و به شما نشان می دهد که هر روز چه کارهایی انجام می دهید. مربی برتری خفیف را به وضوح به شما نشان می دهد و کمک می کند تا قدرت بازتابش را به کار بگیرید. مهم نیست از چه روشی استفاده می کنید. فقط راههایی را پیدا کنید که بتوانید بازتابش را به فعالیتی روزمره تبدیل کنید. کاری که هر روز و بدون قفلت و قصور انجامش دهید. وقتی جنبه ای از زندگیتان که در یک روز آن را بهبود نبخشیده اید برایتان مشخص باشد صبح روز بعد همچون یک موشک حرارتی در جستجوی بهبود بخشیدن به آن خواهید بود شما نمیتوانید جلوی خودتان را بگیرید و چنان با انگیزه خواهید بود که هیچ چیزی نمیتواند جلوی بهتر شدن و پیشرفت شما را بگیرد استفاده از قدرت تجلیل دلیل دیگری نیز وجود دارد که چرا قدرت بازتابش اینقدر مهم است. بازتابش فقط نیروی عیبجو نیست که تلاش کم یا تنبلیتان را به شما گوش زد می کند. بازتابش همچنین برای این است که همه گامهای مثبتتان را به شما خاطر نشان کند. در سال 1980، کن بلانچارد و اسپنسر جانسون در کتابشان نوشتند افرادی که احساس خوبی درباره خودشان دارند، نتایج خوبی به دست می آورند. کتاب کوچکی که این عبارت در آن آمده بود کتاب مدیر یک دقیقه‌ای نام داشت و به یکی از کتاب کتاب‌های کسب و کار دنیا تبدیل شد بلانچارد و جانسون چیزی را ابداع کردند که از همان زمان به اصطلاحی کلیشه‌ای در کسب و کار تبدیل شد آنها مدیران و مالکان کسب و کارها را ترغیب کردند که به جای اینکه در سازمانشان بچرخند و سعی کنند مچ افرادی را که کاری اشتباه انجام میدهند بگیرند به دنبال افرادی باشند که در حال انجام دادن کار درست هستند و فوراً از آنها قدردانی کنند آنها این کار را تحسین یک دقیقهی نام نهادند خیلی آسان است که از توجه به کارهای درستی که انجام می دهیم قفلت کنیم اگر صاحب فرزندید، احتمالا هنوز هم لحظه ای که آنها اولین قدمشان را برداشتند به یاد دارید. احتمالش زیاد است که آن قدم اول شما را زوغ زده کرده باشد و به مسابه رویدادی بزرگ آن را جشن گرفته باشید. حتی احتمالش بیشتر است که در طی هفته بعد آنها توانسته باشند به مدت چند ساعت در اطراف راه بروند و هیچ کسی اهمیتی به آن نداده باشد، حتی خودشان. یک بار ماجرای خانومی را شنیدم که در پنجاه سالگیش به جایی رسیده بود که احساس می به شدت تشنه مهر و محبت است و دوچار تردید شده بود که آیا می به زندگی مشترک با همسرش ادامه دهد یا نه؟ او به شوهرش گفته بود که چه احساسی دارد و مدت هاست که نمی تشخیص دهد که آیا شوهرش هنوز هم دوستش دارد یا نه؟ شوهر بیچاره مات و مبهود شده بود و با تعجب گفته بود اما من سی سال پیش به تو گفتم که عاشقت هستم چرا فکر میکنی چیزی تغییر کرده است؟ مرد بیچاره هیچ وقت به ذهنش خطور نکرده بود که اصلا کافی نیست فقط یک بار به همسرش بگوید دوستت دارم. این چیزی است که نه تنها هر روز باید با کلامتان به او بگویید بلکه باید با اعمال و رفتارتان نیز آن را نشان دهید. خصوصا با همان کارهای کوچک و ای که نشان می دهند، من به فکرت هستم و به تو اهمیت می دهم. من به این قدرت برتری خفیف که حاصل از بازتابش و قدردانی است تجلیل می گویم. اقدامات برتری خفیف انتخابهای درست و تدریجی تدریجیتان را درست در جایی نگه دارید که به آنها را ببینید و از خودتان تجلیل کنید. به یاد داشته باشید همه ی کاری که برای بکار بستن برتری خفیف در موفقیتتان لازم است مجموعه ای از گامهای کوچک است. به این فرایند اعتماد کنید. آن گامها را قدر بشناسید هر چقدر هم که کوچک و ناچیز به نظر برسند. هر گونه انتخاب درست و معفقیت را جشن بگیرید. آنگاه واقعا احساس میکنید که کفه ترازو در جهت دلخواه شما تغییر میکند هیچ چیزی مانند موفقیت موجب موفقیت های بیشتر نمی شود داستان های شخصی از خوانندگان کتاب مایک استیو و کیم ملییا ویلمینگتون ایالت کارولینای شمالی وقتی که اولین بار با فلسه برتری خفیف آشنا شدیم از لحاظ مالی اعای نابسامانی داشتیم. ما اونقدر توانایی مالی نداشتیم که بتونیم غذا و صورت رو پرداخت کنیم چه برزه به اینکه بتونیم به بقیه کمک کنیم. بعد از آشنایی با فلسفه برتری خفیف شروع به استفاده از اون تو همه جنبه زندگیمون کردیم. این اصولو به دقت تو کسب و کار خانوادگیمون به کار بستیم و از چهار همپیمان برتری خفیف هم به خوبی استفاده کردیم. ما به شکل گروهی روی فعالیت‌های روزانهی تمرکز کردیم که میدونستیم در نهایت ما را به تکانشی میرسونن که برای دستیابی به اهدافمون بهش نیاز داشتیم. مطمئن می که وظایفمون رو به خوبی به انجام میرسونیم و کارهایی رو که گفته بودیم انجام میدیم به طور کامل انجام میدادیم پس هیچ چیزی نمیتونست ما را به گذشته برگردونه. زمانهایی رو به بررسی این موضوع اختصاص میدادیم که تلاشامون چگونه میتونن اثر بخشتر و پربارتر باشن و به دنبال هر گونه فرصتی بودیم که موفقیتهامون رو جشن بگیریم و به همون اندازه از دیگرانی قدردانی کنیم که تو دستیابی به اون موفقیتها به ما کمک کرده بودن نتایج خیلی فراتر از اون چیزی بود که انتظارشو داشتیم توی پنج سال درآمدمون ده برابر شد همچنین تونستیم یه بنیاد غیرانتفاعی واسه کمک به افراد نیازمند راه اندازی کنیم بزرگترین و افتخارآمیزترین دستاورد ما جمعآوری بیش از 100 هزار دلار برای یک پرورشگاه دخترانه در گواتمالا بود ما همچنین سفرهایی رو برای اعزام افراد داوطلب واسه کمک به این پرورشگاهها ها سازماندهی و برنامه ریزی کردیم ما با به کارگیری این اصول ساده نه فقط کیفیت زندگیمونو به ترزی باور نکردنی افزایش دادیم بلکه مهمتر از اون تونستیم به کمک افراد نیازمند بریم و زندگی اونا رو هم تغییر بدیم نکات مهم شما در مسیر تسلط یافتن بر برتری خفیف چهار همراه قدرتمند دارید قدرت تکانش آنکه پیوسته میرود در مسابقه برنده می شود قدرت تکمیل کارهای ناتمام و نیمه کارتان را به اتمام برسانید قدرت بازتابش با خود واقعیتان روبرو شوید قدرت تجلیل به کارهای درستی که انجام می دهید، توجه کنید